بروگان و پادشاه قوم سفید روزی روزگاری مرد بسیار ثروتمندی در نزدیکی براندون بی زندگی می کرد که اسمش بروگان بود بروگان زمین های مرغوب زیادی داشت و تمام کسایی که اونو می شناختن دوستش داشتن یه روز صبح در حالی که به تنهایی در ساحل قدم می زد، روی بلندترین موج کر اسب کوچیک و بسیار زیبایی دید که بزرگتر از یک بز نبود بروگان گفت آه عجب حیوان کوچیک و زیبایی این اسب به کسی در این منطقه تعلق نداره مال من هم نیست اما به هر حال اونو با خودم میبرم اگه سر سرکله صاحبش پیدا شد حتما میتونه ادعای خودش رو ثابت کنه بروگان اسب رو به استبل برد و به او هم مثل بقیه حیوانایی که اونجا داشت غذا داد اسب برشت خوبی داشت و بعد از گذشت دوازده ماه همه از تماشای اون لذت میبردن. بروگان سه سال کره اسب رو تو استبلی نزدیک خودش نگه داشت. در پایان سال سوم کره اسب به اسبی بزرگ و رو تبدیل شد. بروگان تمام دوستا و همسایه‌هاش رو به مهمونی و جشنی بزرگ دعوت کرد و با خودش فکر کرد فرصت خوبیه برای یافتن کسی که بتونه سوار این اسب عجیب بشه. در ساحل دریا میدان مسابقه با شکوهی وجود داشت وقتی روز جشن فرا رسید تمام مردم تو میدون جمع شدند اسب رو هم دهنه زدن و زین کردند و به ساحل آوردند میدون مسابقه اونقدر شلوغ بود که اگه سوزن مینداختی پایین نمی‌اومد مگر روی سر مردم از پیر و جوان گرفته تا مرد و زن و بچه‌هایی که در جشن شرکت کرده بودند سه روز طول کشیده بود تا زنای دهکده برای میهمانها ها غذا آماده کنند. همه چیز به اندازه کافی و حتی بیش از حد بود. بروگان سعی کرد کسی رو پیدا کنه که سوار اسب بشه ولی حتی یه نفر هم راضی به این کار نشد. اسب اون چنان آتشی مزاج و تندرو بود بود کم از اون وحشت داشتن. بروگان برای اینکه جشن و مسابقه خراب نشه تصمیم گرفت خودش سوار اسب بشه. به محض اینکه بالا رفت بر روی زین قرار گرفت اسب روی پاهای عقبش بلند شد و با یک جهش به هوا بلند شد و تر از هر بادی به پیش رفت ابتدا روی خشکی و بعد روی دریا اسب یه لحظه هم توقف نکرد تا اینکه به اتفاق سوارش در سرزمین دیگه روی چهار پاش فرود اومد. بروگان خودش رو در زیباترین جایی که بشر به چشم دیده یافت اسب رو به جلو راند و همه جا رو با لذت تماشا کرد. تا اینکه به قصری بزرگ که دروازه ای زیبا داشت رسید. دروازه تا نیمه باز بود. بروگان با خودش فکر کرد: بسیار خوب، سری به داخل قصر میزنم تا ببینم کسی اونجا زندگی میکنه یا نه. بنابراین افسار اسب رو به یکی از میله‌های دروازه بست و با این فکر که زود برمیگرده، اسب و همونجا رها کرد. وقتی جلوی قصر رسید، در زد و زنی در رو براش باز کرد و گفت: صد هزار بار خوش آمدی ای بروگان براندونی، بروگان از زن تشکر کرد و چون اونو به نام صدا میزد خیلی تعجب کرد. بعد زن اونو به اتاقی بزرگ هدایت کرد و اگرچه بروگان در خانه خودش اتاقهای زیبایی داشت اما این اتاق از بس بزرگ و با شکوه بود، اون ابتدا نمیدونست دونست کجا بشینه. طولی نکشید که زنی جوان و زیبا وارد اتاق شد، زنی که مثل اونو تا حالا بروگان ندیده بود. اون از هر نظر بین نظیر بود چه به لحاظ زیبایی چه به لحاظ گفتار و رفتار زن کنار بروگان نشست و به اون خوش آمد گفت بروگان چند ساعتی رو در قصر به خوردن و نوشیدن حرف زدن و لذت بردن گذروند اما بالاخره فکر کرد که باید بره و به زن هم گفت زن به خنده افتاد و گفت اما دوست خوبم از تمام مردایی که تا حالا اینجا اومدن و تعداد اونها کم هم نیست. هیچ کدوم در نگهداری از اسبشون بدتر از تو نبودن. از وقتی اومدی اسب بیچارست رو به یکی از میله های دروازه بستی و اصرن عین خیالت نیست که گرسنه باشه یا تشنه. اگه من به فکر اون نبودم تا حالا به وضع بدی دچار شده بود. فکر میکنی که چه مدتی تو این قصر هستی؟ خوب، حدود هفت ساعته که اینجام. زن گفت، تو دقیقا هفت ساله که تو این محل هستی. سرزمین جوانی. آنقدر زیبا و راحته که دوازده ماه زندگی در اون معادل یک ساعت زندگی در جاهای دیگه است. بروگان گفت اگه این همه مدته که اینجام پس باید همین حالا برم. زن گفت بسیار خوب. اگه میخوای بری باید سؤالی از تو بپرسم. در این قصر کودکی به دنیا خواهد اومد که تو پدرش هستی و خودت باید براش اسم انتخاب کنی. حالا بگو اسمش رو چی بذاریم؟ بروگان گفت. اگه پسر بود اونو شوان صدا کنین شوان پسر بروگان از اهالی براندون هفت سال از اون نگهداری کن و بعد دعای خیرت رو بدرقه راهش کن و وسایل لازم رو برای سفر به ارین براش مهیا کن منو به اون معرفی کن اگه نشانی از قهرمانها در اون باشه حتما منو پیدا میکنه. بروگان با زن خدافزی کرد به کنار دروازه رفت و اسبش رو همون جایی پیدا کرد که رهاش کرده بود است را باز کرد سوارش شد و با او در هوا تاخت، از پس از ترک اونجا لحظه ای توقف نکرد تا اینکه به یه مایلی خونه بروگان در نزدیکی براندون رسید. درست هفت سال بعد از زمانی که اونجا رو ترک کرده بود. بروگان با دیدن مردمی که در ساحل بودند تعجب کرد که چه چیزی اونا رو دور هم جمع کرده. مردی قد بلند و خوش قیافه در حال عبور از اونجا بود و بروگان اون رو صدا زد و پرسید، مردمی که در ساحل می‌بینم مشغول چه کاری هستند؟ مرد گفت تو باید غریبه باشی، وگرنه حتماً می‌دونستی که مردم برای چی اینجا جمع شدن. بروگان گفت من غریبه نیستم، اما چند سالی از اینجا دور بودم و در این مدت خیلی چیزها عوض شده. مرد گفت اگه مردی برای مدت کوتاهی کشورش رو ترک کنه، در بازگشت می‌بینه که همه چی تغییر کرده. من به تو میگم که مردم چرا اینجا جمع شدن؟ ما در اینجا ارباب خوبی داشتیم و جز خوبی و مهربونی از اون چیزی ندیده بودیم یک روز که برای قدم زدن به ساحل اومده بود روی موجی بلند یک کر اسب کوچک دید کر اسب رو به خونش آورد و سه سال از اون نگهداری کرد بعد مردمو جمع کرد تا از اونا پذیرایی کنه و کسی رو برای راندن اسبش پیدا کنه وقتی کسی داوطلب نشد خودش سوار اسب شد و همه دیدن که چطور اسب به هوا بلند شد پرشی از روی بندر کرد و بعد از نظرها ناپدید شد ما فکر میکنیم که اون تو آب افتاده و غرق شده چون از اون تاریخ تا حالا نه بروگان را کسی دیده و نه عصب رو ما برای ارباب متاسف شدیم چون نسبت به ما مهربان بود همسر بروگان بعد از هفت سال انتظار قرار امشب با مرد بزرگی از شمال ازدواج کنه ما نمیدونیم اون چطور آدمیه ممکنه ما رو بیچاره کنه یا از خونه هامون بیرون بندازه. بروگان از مرد تشکر کرد و با عجله به خونش رفت. خدمتکارا از دور اونو دیدن و شناختن و فریاد زدن ارباب داره میاد، ارباب داره میاد. جنبوجوش زیادی تو خونه به راه افتاد و طولی نکشید که همسر بروگان خبر رو شنید و به استقبال شوهرش رفت. همه تصدیق کردن که او از دیدن بروگان خوشحال شده. بروگان از همسرش پرسید امروز چرا همه اینجا جمع شدن؟ زنش گفت مگه امروز همون روزی نیست که تو هفت سال پیش کشور رو ترک کردی و نمیدونیم کجا رفتی؟ شامی که اون شب آماده کرده بودی از لحظه رفتن تا حالا به همون شکل باقی مونده. فکر کردم بهتر دوباره مردم رو خبر کنم و شام رو به یاد تو که اون رو تهیه کرده بودی بخوریم. بروگان چیزی نگفت. مردم شام خوردند و مرد و زن و کودک همه راضی به خونه برگشتند. بعد از گذشت هفت سال دیگر از اون شب بورگان دوباره میهمانی بزرگی ترتیب داد. همه چیز آماده شد و جمعیت زیادی به میهمانی اومدن هوا خیلی خوب و صاف بود و از هر طرف تا مسافتی دور دیده میشد. بروگان به یکی از مرداش که چشمی تیزبین داشت گفت به سمت دریا نگاه کن. آیا میتونی کسی رو ببینی؟ هفت سال پیش از بیرسیل در سرزمین جوانی به خانه برگشتم و پسرم اگر واقعا پسری داشته باشم امروز باید به اینجا بیاد. تا حالا باید میرسید. مرد کاملا مراقب دور ها بود و ناگهان فریاد زد قایقی یک دکله می بینم که به سمت ما میاد و سریعتر از تمام قایق هایی که تا حالا دیدم حرکت می کنه. درون قایق فقط یه مرد جوان می بینم مردی بسیار جوان بروگان گفت آره خودشه قایق با آخرین سرعت نزدیک شد و طولی نکشید که جوان در برابر پدرش ایستاد بروگان پرسید تو که هستی؟ جوان گفت، نام من شوان مک بروگان است. بروگان گفت، اگر نامت این است برای خوردن شام بشین، چون تو پسر منی. وقتی میهمانی به پایان رسید، مردم به خونه هاشون رفتن. همسر بروگان هم بعد از اینکه فهمید پسر کیه بسیار خوشحال شد و به نظر میرسید که اونو بسیار دوست داره. همه چیز به خیر و خوشی گذشت تا اینکه یه روز، وقتی بروگان و پسرش به شکار رفته بودن و از شدت گرما جایی نشسته بودن که استراحت کنن پسر به پدرش گفت از وقتی پیش تو اومدم به نظرم میرسه که از چیزی رنج میبری ولی تا حالا نپرسیدم که چه مشکلی داری یا چه چیزی ناراحتت میکنه بروگان گفت مشکلی ندارم الا اینکه همسرم میخواسته با مردی از اهالی شمال ازدواج کنه نگران زندگی هم هستم چون در مدتی که در بیر بودم همسرم با این مرد آشنا شد و روزی که به خانه رسیدم اونا قرار بود با هم ازدواج کنن از اون موقع تا حالا خواب آرام به چشمم نیومده شوان گفت بسیار خوب پدر به زودی به این ماجرا خاتمه میدم شوان صبح روز بعد از خواب بلند شد چوب هاکیش رو به دست راست گرفت و توپش رو به دست چپ بعد توپ رو بالا انداخت و با چوب به اون زد و به همین ترتیب تا شمال رفت در تمام این مدت نگذاشت توپ حتی یه بار با زمین تماس پیدا کنه در اونجا به دنبال دشمن پدرش گشت وقتی خونه اونو پیدا کرد به اونجا رفت و در زد و پرسید اربابت خونه است؟ خدمتکار جواب داد بله شوان گفت برو و به اون بگو که کارش دارم بگو عجله کنه چون باید موقع شام در براندون باشم ارباب خونه بیرون اومد و وقتی دید یه پسر بچه با مردی مثل اون اینجور گستاخانه حرف میزنه خیلی تعجب کرد و گفت اگه فوراً عذرخواهی نکنی سرت رو میبرم شوان گفت ولی من اینجا نیومدم که از تو یا هر کس دیگه ای عذرخواهی کنم بلکه اومدم تا به خاطر مشکلی که برای پدرم به وجود آوردی از تو انتقام بگیرم ارباب گفت پدر تو کیه پدر من بروگان براندونیست مرد از خونه بیرون اومد و هر دو روی چمنها رفتن و با شمشیر با هم جنگیدن هنوز زمان زیادی از شروع مبارزه نگذشته بود که شوان گفت داره دیر میشه من قول دادم که قبل از شام خونه باشم تأخیر فایده ای نداره اینو گفت و ناگهان ضربه ای میان سر و شانه های مرد وارد کرد که باعث شد سرش یک مایل اون طرفتر به زمین بیفته البته قبل از اینکه سر به زمین بیفته اون رو از موهاش گرفت و جسد مرد رو همونجا که بود گذاشت بعد چوب هاکی رو به دست راست گرفت و توپ رو به هوا انداخت و اون رو به کمک چوب به سمت جنوب روند و به همین ترتیب تمام راه رو زیر پا گذاشت و توپ از شمال تا به راندون حتی یک بار هم به زمین نیفتاد شون در حالی که چوب هاکی و توپ رو به دست داشت وارد خانه شد و سر رو زیر پای پدرش انداخت و گفت پدر عزیزم این هم سر دشمنتان از این به بعد دیگر مشکلی برایتان ایجاد نمی کنه. وقتی همسر بروگان سر رو دید سخت تکان خورد اما اجازه نداد کسی به ناراحتی اون پی ببره یک روز که پدر و پسر از شکار اردک به خونه برمیگشتن زن ناله کنان گفت که داره می میره شو پرسید آیا اینجا یا هر جای دیگه درمانی برای درد تو وجود داره زن گفت هیچ دوایی برای درد من وجود نداره هیچ دوایی مگر سه سیب از باغ سفید در سرزمین قوم سفید پسر گفت: پس من قول میدم قبل از اینکه سومین وعده قضات رو بخوری و قبل از اینکه فردا شب به خواب بری، سه سیب از سرزمین قوم سفید برات بیارم. وقتی اونا از اتاق بیرون اومدن، پدر خیلی عصبانی بود و گفت بهتر بود زندگیت رو برای مادر خودت به خطر مینداختی. شان گفت باید همین حالا حرکت کنم. قول قوله و من هرگز زیر حرفم نمیزنم. این صبح روز بعد حرکت کرد و بعد از یک روز سفر به دره ای رسید که خونه ای تو اون بود توی خونه هیچ موجود زنده ای نبود مگر مادیانی سفید با نه چشم مادیان فریاد زد، صد هزار بار خوش اومدی ای شون مکبروگان براندونی بعد از یک روز سفر باید خسته و گرسنه باشی. همین حالا به اتاق مجاور برو و غذا بخور و خودتو تقویت کن شوان به اتاق مجاور رفت و در اونجا میزی پیدا کرد پر از قضاهایی که بزرگترین پادشاه ها در آرزوی اون بودند. اونجا خورد و نوشید و بد رفت و به خاطر قضا صد هزار بار تشکر کرد و مدتی کنار آتیش ایستاد. بعد مادیان گفت بیا اینجا و زیر سر من دراز بکش. از چیزهایی که میبینی حیرت نکن و هیچ حرفی نزن. شو آن کاری رو که مادیان خواست انجام داد گروب بود که سه خوک دریایی وارد شدند و به اتاق غذاخوری رفتند در اونجا پوست خودشون رو کندن و تبدیل به سه مرد جوان و قیافه شدند یکی از اون سه نفر گفت ای کا شن مکبرگان براندونی امشب اینجا بود خیلی دوست دارم اونو ببینم هدیه ای به اون بدم و از مصاحبتش لذت ببرم دومی گفت من هم از دیدنش خوشحال میشم و هدیه ای به او خواهم داد سومی گفت منم همینطور مادیان گفت همین حالا پیش اونا برو و از مصاحبتشون لذت ببر صبح که شد از اونا درباره هدایا سوال کن شوان پیش اونا رفت مردان جوان داد زدن صد هزار بار خوش اومدی شون مکبروگان از دیدنت خوشحالیم اونا نوشیدن، شعر خوندن، قصه تعریف کردن و بیان که تا صبح یک لحظه چشم به هم بذارن قبل از طلوع خورشید اون سه جوون دوباره به خوک دریایی تبدیل شدن و وقتی داشتن میرفتن شوان گفت امیدوارم هدایایی رو که دیشب قول دادید فراموش نکنید بزرگترین اونا گفت نه فراموش نمی کنیم، بیا این ردا رو بگیر تا وقتی اون رو به تنداری خوش قیافه ترین مرد دنیا خواهی بود دومی گفت این توپ رو بگیر. اگه اون به هوا بندازی، هر چی دوست داری و آرزو کنی، قبل از اینکه به زمین برسه آرزوت برآورده میشه. نفر سوم یه سوت به او داد و گفت: اگه در این سوت بدمی، هر دشمنی که صداشو بشنوی بیحال روی زمین میفته و به خواب میره. علاوه بر اون، مادیان سفید هم آماده است که سوارش بشی. شوان هدایا رو گرفت. مادیان گفت: قبل از اینکه سوارم بشی مقداری یونجه به من بده. تا حالا هرکی روی من نشسته یا به کف تبدیل شده و باد رفته یا به زمین پرت شده و جونشو از دست داده. اون وقت شوان سوار مادیان شد. مادیان اونو به جای دوری پرتاب کرد. شوان سخت تکان خورد و ترسید اما دوباره به خودش اومد. دفعات دوم و سوم تر بود. بار چهارم سوار شد تا سفر رو آغاز کنند و طولی نکشید که به ساحل دریا رسید. روز سوم شوان به سرزمین قوم سفید رسید. مادیان به راحتی و بی هیچ مشکلی روی آب می‌دوید. هیچ این نمیتونست به این سرعت پرواز کنه. وقتی شوان به نزدیکی قصر رسید، در حاشیه شهر مقابل خانه ایستاد. از پیرمرد صاحب‌خونه خاص که اتاقی به اون کرایه بده. پیرمرد گفت: خوش اومدی. هم به خودت اتاق میدم و هم جایی برای اسفت آماده می‌کنم. بعد از شام شوان به پیرمرد گفت که چه مأموریتی داره؟ پیرمرد گفت دلم برات میسوزه و میترسم جانت رو سر این کار بذاری اما هر کمکی از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم تا حالا دست هیچکی به اون سیبا نرسیده و اگه غریبه ای رو در حال چیدن اونها بگیرن پادشاه بلا فاصله سر جدا میکنه هیچ نوع حیوان وحشی و خطرناکی نیست که از سیبها محافظت نکنه اونا روز و شب بی وقف مراقب سیبان شوآن پرسید آیا میدونی سیبا چه خاصیتی دارن پیرمرد گفت خیلی خوب میدونم و در واقع خودم هم دوست دارم یکی از اونا رو داشته باشم اگه کسی بیمار باشه و حتی یک گاز از اون سیبا بزنه شفا پیدا میکنه اگه پیر باشه دوباره جوان میشه و از اون لحظه به بعد دیگه غمی نخواهد داشت و همواره خوشبخت و سالمه من کبوتری به تو میدم که تو باغ رهاش کنی کبوتر از درخت به درخت دیگه ای می میپره تا اینکه به آخرین درخت برسه تمام حیوانات اون رو دنبال می‌کنن و در مدتی که اونا مشغول شکار کبوترن تو میتونی هر چند تا سیب که می‌خوای برداری اما امیدوارم حداقل یکی از اونا رو به من بدی شون گفت نگران نباش اگه یه سیب بردارم نیمی از اون رو به تو میدم اگه دو سیب بردارم یکیشو به تو میدم پیرمرد خوشحال شد شون صبح روز بعد اول وقت کبوتر رو گرفت بر پشت مادیان نشست و به سوی باغ حرکت کرد وقتی کبوتر وارد باغ شد و از یه درخت به درخت دیگه پرواز کرد، حیوانات به تعقیب اون پرداختن. شان سوار بر مادیان وارد باغ شد. اون رو جایی رها کرد و رفت تا از اولین درخت سیب بالا بره. اما قبل از اینکه دستش به اولین سیب برسه یا بتونه برگرده و سوار مادیون بشه، مردان پادشاه دستگیرش کردن و اونو پیش پادشاه بردن. مادیان هم از روی دیوار پرید و به خونه پیرمرد رفت. شوان تمام ماجرا رو برای پادشاه تعریف کرد و گفت که پدرش بروگان براندونی و مادرش شاهزاده خانومی از بریسیل در سرزمین جوانی است. پادشاه گفت: "آه، تو همون قهرمانی هستی که این همه مدت منتظرش بودم. بخش زیبایی از سرزمین من." جزیره که اون پشت قرار داره اما قولی جزیره رو تصرف کرده و به کمک ارتشی از مزدوران اونجا رو اداره میکنه جزیره رو از قول و مرداش بگیر و سر اونو رو برام بیار تا به سیب ها برسی شوان نزد پیرمرد رفت و همه چیزو برای مادیان تعریف کرد مادیان گفت تو میتونی بدون هیچ مشکلی اون کار رو انجام بدی چون از قدرت کافی برای انجام اون برخورداری شوان صبحونش و خورد و پشت مادیان نشست و به سوی جزیره تاخت. درست قبل از اینکه پای مادیان به زمین برسه، شوان سوت رو به صدا درآورد و هرکی صدای اونو شنید لحظه ای بعد به خواب رفت. آنگاه شوان شمشیرش رو کشید، سر از تن قول جدا کرد و تا قبل از تاریکی هوا مردی غیر از خودش در جزیره زنده نبود، بعد سر قول رو به قاچ زین بست و سوار مادیان شد. آماده حرکت بود که مادیان گفت مراقب باش که قبل از پیاده شدن از من به عقب و به سمت جزیره نگاه نکنی. اینو گفت و حرکت کرد و طولی نکشید که به نزدیکی قصر رسیدن. وقت عبور از حیات شعان با خودش فکر کرد من جزیره رو تمیز کردم سر غول رو هم که آوردم پس سیبها مال منه و حرفهای مادیان رو فراموش کرد. و برگشت تا به جزیره نگاه کنه. اما به محض انجام این کار از زین افتاد و روی تلی از خاک فرود اومد. در اون لحظه پسر جوونی که مسئول غذا دادن به سکا و حیوونا بود، ناخوش و مجروح اونجا دراز کشیده بود ردای شوان از روی شونش لیز خورد و روی این آدم کسیف و زشت افتاد و اونو بلا فاصله به خوشقیافه ترین مرد اون سرزمین تبدیل کرد پسر ردا رو پوشید سوار مادیان سفید شد و به سوی قلعه رفت پادشاه از دیدن سر قول اونقدر خوشحال شد که نمیدونست چگونه از قهرمان قلابی تشکر کنه و پرسید جزیره رو چطور تمیز کردی؟ بریدن کار سختی بود. دهنده سگا گفت تا کنون دنیا جنگی رو که امروز در اون جزیره بین من و قول و افرادش در گرفته به خودش ندیده پادشاه گفت انعام خوبی به تو میدم قول سیبهای باغ سفیدم رو داده بودم اما بیشتر از اون به تو میدم من جوانترین دخترم رو به عقد تو در میارم و اون جزیره رو هم به عنوان جهیزیه به تو میدم اما دخترم یک سال و یک روز دیگه به سن ازدواج میرسه و تا اون موقع تو اینجا در قصر با من زندگی کن باور کنید قضا دهنده سکه ها اون شب از دید خودش مرد بزرگی بود. اما زنی که از مرغ ها مراقبت می کرد همون موقع تو حیات بود و همه چیز رو به چشم خودش دیده بود. اون خیلی خوب می دونست که قهرمان قلابی کیه و دائما می گفت اون بزرگترین دروغگوی دنیاست. همین زن شوان رو به خونش برد. شوان آنچنان مریض و رنجور بود درست مثل قضا دهنده سکه که هیچ کس اونو نشناخت زن از او پرستاری و مراقبت کرد تا اینکه روز ششم تونست حرف بزنه اما کاملا ضعیف و ناتوان بود شوان از زن پرسید چطور باید درمان بشم زن پاسخ داد من میدونم امروز با زن دانایی حرف زدم و فهمیدم داروی درد تو چیه اینو گفت و به کنار چشمهای رفت که متعلق به جوانترین دختر پادشاه بود و نه شاخه نی را که نزدیک اون رویده بود در آورد. سه تا از ها رو دور ریخت و شش تا رو نگه داشت. قسمت‌های سفید رو از بخش‌های سبز جدا کرد. اونا رو در آب له کرد و مقداری از آب رو به شوان داد تا بنوشه و بقیه رو به بدنش مالید. یک هفته طول نکشید که شوان مثل قبل سالم و سر شد. زن همه چیز رو درباره باره دروغ های قضا دهنده سگ و سعادتی که نصیب شده بود به شوان گفت شوان در قصر مشغول کار شد و چند روز بعد پادشاه قصد شکار کرد و از تمام مهمان قصر دعوت کرد تا اون همراهی کنن شوان هم باید به عنوان پادو اونا رو همراهی میکرد و مثل بقیه خدمتکارا آزوقه میهمانها ها رو حمل میکرد قبل از تاریکی هوا و در حالی که گروه 20 مایل دور از قصر و در بیشهی خطرناک و وحشی پیش رفته بود، مه قلیزی همه جا رو گرفت و همه به وحشت افتادن. شوان گفت من میتونم شما را به قصر هدایت کنم. پادشاه گفت این کار بکن. شوان گفت در صورتی این کار رو میکنم که دخترت رو به عقد من در بیاری. پادشاه گفت ولی دخترم نامزد کسی دیگه ای شده. شوان گفت من بیش از دیگران حق ازدواج با اونو دارم. من بیش از دیگران حق ازدواج با اونو دارم من بودم که جزیره رو از دست قول و افرادش درآوردم پادشاه گفت حرفت رو باور نمی کنم شکارچی اعظم گفت همه ما گم میشیم. چاره ای نیست باید هرچی میخواد به اون بدی تازه معلوم هم نیست تا روز ازدواج با دخترتون زنده بمونه پادشاه تسلیم شد شوان پشت سنگ بزرگی رفت توپ را به هوا انداخت و آرزو کرد که بهترین قصر دنیا براش فراهم بشه قبل از اینکه توپ به زمین برسه پادشاه و میهمانان و همراهان همگی در قصری بودند به مراتب بهتر از قصرهایی که تا آن زمان در آن بودند یا به خواب دیده بودند همه جور قضا و نوشیدنی اونجا بود و به اضافه اتاقهای زیبا و تختهایی از ابریشم و طلا وقتی همه کاملا سیر شدند با آهنگی دلانگیز به خواب رفتند و تا صبح بیدار نشدند صبح که شد همه بیدار شدند و خودشون رو در بیشزاری وحشی یافتن در حالی که دسته این نی زیر سرشان و آسمان خاکستری بالای سرشان بود. خوشحال از دیدن روشنایی روز بلند شدن و به خونه رفتن و اما در این مدت همون زنی که نگهبان مرها بود داستان شوان رو برای دختر پادشاه تعریف کرده و به اون گفته بود که چه کسی جزیره رو از گول گرفته و شاهزاده خانم فهمیده بود که نامزدش در واقع یک دروغگوه، وقتی سال به پایان رسید و زمان ازدواج دختر پادشاه شد، اون اعلام کرد وقتی با کسی ازدواج میکنه که بتونه پشت مادیان سفید بشینه، همون مادیانی که نه چشم داشت و میتونست هر مردی رو بکشه یا خرد و خمیر کنه. قهرمان دروغین اولین کسی بود که سوار عصب شد، اما ردا از روی دوشش افتاد و اون مثل بوتهای ای در باد ناپدید شد و از اون روز تا کنون کسی اونو ندیده. شانزده شاهزاده سعی کردن بر مادیان سفید سوار بشن اما یکی بعد از دیگری جان خودشون از دست دادن ولی جسدشون پیدا شد شوان که اکنون ردار رو به داشت سوار مادیان شد مادیان سه بار دور قصر چرخید و عاقبت جلوی درزانو زد تا شوان پیاده بشه اگه ندیمه های شاهزاده خانوم اونو نگرفته بودن حتما خودش را از پنجره بیرون انداخته و کشته بود از بس که عجله داشت زودتر پایین بیاد و شوان را ببینه عروسی اونا همون موقع شروع شد و تا یک سال و یک روز ادامه داشت و روز آخر بهترین روز اون بود وقتی عروسی به پایان رسید شوان به یاد مادیان افتاد و سری به استابل زد کسی به مادیان علف نداده و از اون فقط یک پوست سفید باقی مونده بود وقتی شوان به محل نگهداری مادیان رسید، سه مرد جوان و دو زن در اونجا شطرنج بازی میکردن. شوان گفت، آه خدای من، مادیان را از اولین روز عروسی تا این لحظه به کلی فراموش کردم و زد زیر گریه. یکی از زنها که سنش از بقیه بیشتر بود پرسید چرا گریه میکنی؟ و شوان دلیلش رو گفت، زن گفت، لازم نیست گریه کنی، من میتونم اونو دوباره زنده کنم. این رو گفت و پوست رو برداشت و تن خودش کرد و همون لحظه تبدیل به مادیان سفید شد دوست داری من به صورت مادیان سفید ببینی یا زنی که همین چند لحظه پیش بودم شوان گفت به صورت زن زن پوست رو در آورد و تعریف کرد که پدرش پادشاه سه برادرش رو به خوک دریایی و خودش رو به مادیان سفید تبدیل کرده تا قهرمانی پیدا بشه و جزیره رو آزاد کنه و ادامه داد تو جزیره رو آزاد کردی و ما همگی دوباره به شکل اولمان برگشتیم پادشاه جزیره را به دامادش بخشید و اجازه داد هر تعداد سیبی که دوست داشت از باغ بچینه اولین کاری که شون کرد این بود که یکی از سیب‌ها را به پیرمردی داد که هنگام ورودش به سرزمین قوم سفید به او سرپناه داده بود پیرمرد سیب رو یکجا بلعید و به مردی بیست 21 ساله تبدیل شد جوان و سالم و آنچنان حال که هرکی نگاهی به اون میکرد سر سرحال میشد. شوان و همسر جوانش یک سال و یک روز دیگر با پادشاه زندگی کردند. بعد به ملاقات بروگان در براندون رفتند. زن بروگان آنقدر تظاهر به بیماری کرده بود که بالاخره واقعا مریض شد و مرد. بروگان هم اکنون پیر و بدحال شده بود. شوان با خودش فکر کرد حداقل حد کاری که از دستم برمیاد، اینه که یک سیب به اون بدم و سیب رو بهش داد بروگان سیب را خورد و به جوانی 21 ساله تبدیل شد و اگر یک نفر در ارین خوشحال بود اون یک نفر کسی نبود جز بروگان شوان پدر جوان و خوشحالش رو در براندون گذاشت و به اتفاق همسرش به جزیره برگشت پایان